دفت کردن وزیر مریدان را، گفتان ای سخرگان گفتگو، و از گفتار زبان و گوش جو، پنبن در گوش حس دون کنید، بنده حس از چشم خود بیرون کنید، پنبه آن گوش سر، گوش سر است، تا نگردد این کران باطن چراست بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید تا به گفت و گوی بیداری دری تز گفت خواب بویی کی بری سیر بیرونیست قول و فعل ما سیر باطن هست بالای سما حس خشکی دید کس خشکی بزاد ایسی جان پای بر دریان نهاد سیر جسم خشک بر خشکی فتاد سیر جان پا در دل دریا نهاد چون که عمرن در ره خشکی گذشت گاه کوه و گاه سهرا، گاه دشت آب حیوان از کجا خواهی تو یافت، موج دریا را کجا خواهی شکافت، موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، موج آبی محو سکرست و فناست، تا در این سکری از آن سکری تو دور، تا از این مستی از آن جامی تو دور گفتگوی ظاهر آمد چون قبار مدتی خاموش خو کن هوش دار